به نام خدای یگانی مهربان سلام. گروهی از پژوهشگران تاریخ افسانه ها رو به عصر نو سنگین نسبت میدن. و گروهی دیگه تاریخ پیدایش نخستین افسانه ها رو صداهای میانه میدونن. در برنامه هزار افسان قصد داریم ای رو از مردمان عرب خوزستان براتون نقل کنیم به نام افسانه دختری که از دهانش سوسن و یاسمن میریخت به گردآوری سلیمه فتوحی روزی روزگاری در میون مردمان عرب خوزستان تاجر پیری زندگی میکرد که ثروت و مال و منال زیادی داشت. خونش مثل کاخ پادشاه واقعی بود. مرد تاجر وقتی از خونش بیرون میرفت یا برمیگشت مردم در برابرش تعظیم میکردند. تاجر افسانه ای ما سه دختر خوب و مهربون هم داشت. روزی دختر بزرگش رو صدا زد و گفت دخترم میتونی بگی که من چجوری این همه ثروتمند شدم و چرا مورد احترام مردم دختر بزرگ تاجر که معلماش اونو آموزش داده بودن جواب داد پدر عزیزم شما هرچی دارین از کوشش و تلاش خودتون دارین پدر از پاسخ دختر بزرگش خوشحال شده و گفت آفرین آفرین دختر عزیزم آفرین تاجر بعد دختر دومش رو صدا زد و گفت خب تو بگو ببینم من چجوری این همه ثروت به دست بردم و مردم اینقدر به من احترام بیذارن دختر دوم تاجر بلافاصله فاصله جواب داد پدر جان این که معلومه شما لیاقت این همه ثروت رو داشتین که صاحب اون شدین و چون انسان خوبی هستی همه مردم به بهتون احترام می‌ذارن تاجر از شنیدن پاسخ دختر دومش هم خوشحال شد و گفت آه تو هم مثل خواهر بزرگت دختر عاقل و فهمیده هستی آفرین آفرین بعد اونو نزد خواهر کوچکترش فرستاد چند لحظه بعد کوچکترین دختر در برابر پدر حاضر شد دختر کوچک مرد تاجر به محض ورودش به نزد پدر با مهربونی پرسید پدرجان با من کاری داشتین؟ پدر سریع تکون و گفت البته البته دختر کوچک من البته من میخوام از تو بپرسم که به نظر تو من چجوری این همه ثروت به دست آوردم و چرا اینقدر مورد احترام و توجه مردمم دختر کوچیک در گفت پدرچان همه ثروت شما و نعمت‌های دیگه متعلق به خداست و پدر با شنیدن این حرف با عصبانیت کلام دخترش رو قعد کرد و گفت دختر یه نمک نشناست حالا که برای اون چه که در حقت انجام دادم ارزش قائل نیستی برو برو و نعمت خدا را کشت کن دختر که فکر نمیکرد پدرش با یه حرف اینقدر عصبانی بشه که اونو از خونه بیرون کنه با بخز گفت ولی پدر, پدر با عصبانیت گفت سکت دیگه نمیخوام حتی یه لحظه ام تو رو تو این خونه ببینم زود باش زود باش از اینجا برو دختر بیچاره مقداری لباس توی بخچه گذاشت و خودش رو به خواست و مشیت الهی سپرد و از خونه پدرش بیرون رفت حالا کجا میخواست بره نه خودش میدونست و نه ما و نه شما دختر افسانه ما رفت و رفت و رفت تا اینکه به چند آلونک کوچیک رسید آلونکی که قاتلچیا از اون برای استبل حیونا استفاده میکردند دختر با خودش فکر کرد که میتونه شب رو در اونجا به سلامت بگذرونه و یک گوشهای به خواب رد فردا صبح زود مادر یکی از قاتلچیا به آلونک یا همون استبل اومد و با دیدن دختر که معصومانه به خواب رفته بود متعجب شد و آروم اونو از خواب بیدار کرد و گفت دختر دخترجان بیدار شو دختر با وحشت از خواب پرید و با دیدن زن شروع به عذرخواهی کرد و گفت ببخشید مادرجان من من من بدون اجازه وارد استبل شما شدم خیلی خسته بودم و جایی رو نداشتم برم ببخشید زن با لحن مهربانانه ای گفت اشکالی نداره دختر من خب بگو ببینم کی هستی و از کجا میای دختر افسانی ما تمام ماجرای زندگیش رو برای زن بازگو کرد زن که مهر دختر به دلش نشسته بود با خوشحالی گفت آه خدا تو رو برای ما فرستاده تو همونی که من دنبالش میگشتم یه زن خوب و وفادار برای پسرم خدا رو شد و بعد زن دختر رو به خونش برد و چند روز بعد دختر به عقد قاتلشی جوون در اومد و زندگی ای رو شروع کرد و بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ثانیه صاحب دختر زیبایی شدن دختری که وقتی قابله ها اونو توی ترش گذاشتن که بشورن با کمال تعجب دیدن هر قطر آبی که از بدنش میشه که فورا تبدیل به یه پولک طلا میشه و وقتی هم گریه میکرد یاسمن و سوسن از لباش بیرون میریخت. خلاصه با این وضعیت فقر چی جوان جای خودش رو به خوشبختی داد و به قول معروف زندگیشون از این رو به اون رو شد بعد از اون به جای آلونک هیونا امارت با شکوه زیبایی ساختن، امارتی که شکوه و جلالش دهن به دهن از این خونه به اون خونه و از این سرزمین به سرزمین دیگه چرخید تا به جایی که به گوش دختران تاجر یعنی دو خواهر بزرگ دختر افثانی ما هم رسید دختران و بزرگ تاجر اومدن تا با چشم خودشون ببینن جوری خواهر کوچکشون که با قاطرچی جوون ازدواج کرده بود مثل یه ملکه واقعی زندگی میکنه با حالتی حسادتامیز و متحیر به خونهشون برگشتن و حسرت زندگی و خوشبختی خواهر کوچکشونو میخوردن موسیقی سالها گذشت تا اینکه وقت ازدواج دختر چی رسید یعنی همون دختری که از دهنش گلهای سوسن و یاسمن بیرون میریخت چه کسی جز یه شاهزاده میتونه شایستگی همسری اونو داشته باشه ها؟ طولی نکشید که شاهزاده ای از سرزمین دور سوار بر شطر به خواستگاری دختر چی اومد قاضی شهر در اغنامی اونها نوش که پسر پادشاه فلان سرزمین با دختر قاترچی فلان به عقد هم درمیان بعد از این اغنامه شاهزاده به سرزمین خودش برگشت تا مراسم استقبال از کاروان شطرهایی که میبایست عروس رو به خونه همسرش ببرند تدور ببینه علاوه بر این این کاروان میبایست همه جهیزیه عروس رو هم با بستن تنابهای آبی و قرمز با خودش حمل کنه. دوتا دختر بزرگ تاجر که حسادت تمام وجودشون رو پر کرده بود و تحمل این همه تدارک عظیم و ازدواج خواهرزاده‌شون رو با یه شاهزاده نداشتن به نزد خواهر کوچیکشون رفتن و به اون گفتن ای خواهر جان، دخترت هم جوونه و هم زیبا سلا نیست اونو تنها راهیه سرزمینه دور بکنی ما نگران خوهرزاده عزیزمون هستیم خواهر کوچکتر که فکر میکرد دو خواهر بزرگش این حرفو از روی دلسوزی و مهربونی میگن با ناراحتی گفته از دلسوزی شما ممنونم ولی من کسی رو ندارم که با دخترم راهی بشه دو خواهر بزرگتر گفتن، ای خواهر این حرف چیه که میزنی؟ مگه خاله های دخترت مردن؟ چه کسی بهتر از خاله و دختر خاله میتونه در طول راه از اون مواظبت کنه؟ ها؟ خلاصه، خواهرا اونقدر اظهار دلسوزی کردن تا اینکه خواهر کوچکتر قبول کرد که دخترش به همراه یکی از خاله ها و دختر خاله هاش به طرف سرزمین شاهزاده را بیافتند تنگ شطور رو مهکم بستند عروس در و نشست و شطور به طرف صحرا ها مسافرای افسانه ما چند روزی سفر کردند و از شهرها و روستاها دور شدند دختر تشنه شد و از دختر خالش آب خواست دختر خالش گفت اگه تو الان آب بخوری دیگه آبی برای ما نمیمونه دختر که خیلی تشنه بود به خالش گفت خاله جان خیلی تشنمه شما یه قطر آب بدی گلوم خوش شده خالش با عصبانیت جواب داد من آب رو برای دخترم ذخیره کردم نه برای تو دختر لوکس و نون ردنا چی. دختر گریه کرد و دوباره آب خواست در نهایت خالش گفت من قطره قطره بهت آب میدم البته این کار یه شرط داره دختر که تشنگی امونشو بریده بود با زبون و گلوی خوش گفت قبوله شهدی باشه قبوله فقط بهم آب بده دارم از تشنگی میمیرم خاله گفت حالا شد شرط من اینی که در عوض آبی که بد میدم باید چشم راستت رو به من بدی دختره که بیچاره چیکار کار میتونست بکنه اون به خاطر چند جرعه آب اجازه داد خالش چشم راستشو در بیاره. یکی دو روز گذشت و دختر یه بار دیگه احساس تشنگی کرد و از خالش درخواست جرعه‌ای آب کرد. خالم در عوض چند قطره آب چشم چپ اونو ازش گرفت. دختر بیچاره تسلیم قضا و قدر شد. خاله که دید خواهرزادش دیگه چشمی نداره به اون گفت: خب حالا تا دیگه کور شدی و یه شاهزاده اصلا دوست نداره عروسش کور باشه بهترین راه اینه که دختر من به جای تو عروس شاهزاده بشه خاله اینو گفت و فورا دخترش رو روی کجاوه نشون و خواهرزده‌اش رو توی بیابون برهوت رها کرد دختر که دیگه چشمی نداشت تنها و خسته آروم آروم قدم برداشت تا اینکه پیرمرد تنگ دست و سفیدمویی که از اون حوالی میگذشت به دختر برخورد کرد و دلش برای اون سو پیرمرد دختر نابینا رو با خودش به روستا برد زن پیرمرد با دیدن دختر گفت آخه مرد ما خودمون چن بدبختی داریم که تو رفتی این دخترو آوردی آه. کی میتونه از این دختر نابینا مواظبت کنه در این موقع دختر به زبان اومد و گفت آه, آه اگه امکان داره آب به من بدین باید دست و صورتمو بشورم با حرف زدن دختر دونه دونه شکوفه های سوسن و یاسمن از دهنش میری پیرمرد و زنش از دیدن این صحنه شگفت زده شدند اونا مقداری آب برای دختر آوردن تا دست و صورتش رو بشوره در کمتر از چند لحظه کاسهی که با آب اون صورتش رو شسته بود پر از سکه های طلا شد. پیرمرد و زنش با دیدن سکه های تلا به وجد اومدن و از دخترک تشکر کرد. حالا بشنوید از خاله و دخترش خاله و دخترش رفتند و رفتند تا به قصر شاهزاده رسیدند شاهزاده ی جوان به گرمی به استقبال اونها رفت نوازندگان شادترین آهنگهای عربی رو نواختند و مردم برای خوشامدگویی به نزد ها خلاصه شرق غرق شادی و سرور شد. اما همین که شاهزاده با عروس تنها شد فورا پی برد که شکل و شمایل این دختر با عروسی که قبلا دیده بود تفاوت داره و دید وقتی با هم صحبت میکنن هیچ گل سوسن و یاسمنی از دهن دختر نمیریزه اما چیکار کار میتونست بکنه؟ اگه حرفی میزد آبروی خودش و خونوادهش از بین میرفت بنابراین سکوت اختیار کرد خب حالا بشنوید از دختر نابینا روزی دختر به پیرمرد گفت ای پدر جان، این سبد پر از سوسن و یاسمنو بگیر و به شهری که قصر شاهزاده در اون جاس ببر و اینا رو توی خیابون بگردون و بگو من سوسن و یاسمن میفروشم من نغره نمیخوام من پول نمیخوام من سبد پر از گل رو با یه چشم میفروشم پیرمرد هم اونچوری که دختر بهش گفته بود انجام داد. خاله صدای پیرمرد رو که شنید فوراً به کوچه رفت چون دخترش مجبور بود به شاهزاده گلهای سوسن و یاسمن رو نشون بده. بنامرین چشم راست دخترش رو ازش گرفت و اون رو با سبد پرگل سوسن و یاسمن عوض کرد. وقتی پیرمرد چشم دخترخاله رو به دختر نابینا داد دختر زانو زد و خدا رو شکر کرد و اونو به جای چشم نابینای خودش گذاشت اصلون روز وقتی شاهزاده به خونه اومد عروس طوری نشسته بود که فقط یه طرف صورتش پیدا بود اون به شاهزاده گفت وقتی به شکار رفته بودی یه سبد گل سوسن و یاسمن از دهنم ریخت اون وقت سبد پر از گل سوسن و یاسمن و به شاهزاده داد روز بعد هم باز پیرمرد با سبد دیگه ای از گلهای سوسن و یاسمن به کوچه و خیابون اومد و با صدای بلند فریاد زد من سوسن و یاسمن میفروشم من نقره نمیخوام من پول نمیخوام من سبد پر از گل با یه چشم میفروشم این بار خاله، چشم چپ دخترش رو با یه سبد گل سوسن و یاسمن عوض کرد. وقتی شاهزاده از شکار برگشت، عروس گفت امروز از بس حرف زدم خسته شدم. بیا ببین امروز چقدر سوسن و یاسمن از دهنم ریخته. و اما دختر نابینا بله، دختر نابینا وقتی پیرمرد چشم چپ دختر خاله رو براش آورد اونو به جای چشم چپ خودش گذاشت و خدا رو شوک کرد. اون الان دیگه میتونست مثل سابق ببینه. بنابراین از پیر مرد و زنش خدا حافظی کرد. البته از اونا یه دست لباس پسرونه گرفت و برافت. دختره افسانه ما لباسهای پسرانه رو پوشید و رفت و رفت تا به قصر شاهزاده رسید. باغون قصر در حال آب دادن به گلها بود. دختر گفت: سلام اموجان من پسر فقیریم که پی کار میگردم آیا کاری داری من انجام بدم؟ بعد ادامه داد: من میتونم قاطری رو که آسیاب رو به حرکت در میاره بگردونم. باقبون با تعجب به گلهای سوسن و یاسمنی که از دهن دختر به زمین میریخت نگاه کرد و گفت تو پسر عجیبی هستی ولی خب میتونی اینجا بمونی و کار کنی از اون روز به بعد دختر هر روز قاطر رو میچرخوند و قاطر هم میله چرخ آسیاب رو میگردند و گندما رو آرد میکرد تا اینکه در یکی از روزها وقتی تمام افراد قصر در حال استراحت بودن آروم و بیصدا به سراغ شاهزاده رفت شاهزاده که در حال گشت و گذار در باغ قصر بود با دیدن دختر گفت آه تو همون پسر هستی که قاتل رو میچرخونی دختر به تندی جواب داد بله من همونم و با گفتن این حرف گلهای و سوسن و یاسمن از دهنش به زمین ریخت شاهزاده با دیدن این صحنه منقلب شد و گفت تو تو تو واقعا چی هستی؟ دختر سکوت کرد و اشک چشاشو پر کرد. شاهزاده به انگشتری که به دست دختر بود نگاه کرد و دید که انگشتری درست شبیه همون انگشتریه که موقع نامزدی به عروسش داده بود. و بعد گفت این این این از کجا آوردی؟ دختر گفت این همون انگشتریه که شما موقع نامزدی به من دادید شاهزاده با تعجرب گفت من به تو و دختر تمام ماجرا رو برای شاهزاده تعریف کرد بدین ترتیب شاهزاده عروس واقعی خودش را پیدا کرد اون دستور داد خاله و دختر حسودش رو به شهر خودشون برگردونند و مراسم ازدواج شاهزاده و دختر قاتلشی برگزار شد مراسم اینکه چهل شب و چهل روز ادامه داشت افثانه دختری که از دهانش سوسن و یاسمن میریخ رو طول نخ کردم برگرفت از کتاب افثانه های مردم عرب خوزستان به گرداوری سخرا خانم سلیمه فتوحی مردمان هر سه زمین با افسانه ها زندگی میکنند مردم کوچ و بازار افسانه ها رو در طول تاریخ حفظ کرده و اونها رو سینه به سینه و نسل به نسل منتقل کردند. راویان این افثانه ها اغلب زنان و سالخوردگان از این رو حفظ و ضبط و ثبت ها به عنوان میراث معنوی هر سرزمین امری فرهنگی و لازم هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله بور. ویراستار سهیلا کریمی اجرا محران دوستی محسن فراهانی تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرو